میان درود بر شما فایل آوایی پنجم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخ رو با هم آغاز میکنی صفحه پنجا و پنج عنوان حافظه دارم پس هستم من به کاغذ سفید مقابلم نگاه میکنم چرا میفهمم که این یک کاغذ است؟ چرا میدانم نام رنگش سفید است؟ چرا میدانم نام شکلش مستطیل است؟ چرا میدانم کاربردش چیست آیا یک نوزاد هم وقتی به این کاغذ نگاه کند میفهمد که این یک کاغذ است و نام رنگش سفید است و نام شکلش مستطیل است و کاربردش چیست مسلما نه اما مگر نوری که از کاغذ وارد چشم من میشود با نوری که از کاغذ وارد چشم نوزاد میشود فرق میکند مگر هر دو یک چیز نمیبینیم گویا فهم ما محصول دیدن شعیع نیست بلکه محصول پردازش داده است که از شعیع دریافت می کنیم نوزاد دستش را به سمت کاغذ میبرد و آن را بعد از چند بار آزمون و خطا بالاخره می گیرد و به سمت صورت و دهانش می برد و با این روال شروع به کسب اطلاعات از کاغذ می کند و اطلاعات را ذخیره می نماید. بار دوم و سوم که با کاغذ برخورد می کند، اگر چیزی از اطلاعات قبلی که از آن کسب کرده بود در یادش مانده باشد، خاطره همان اطلاعات در ذهنش فراخانی می گردد و همان اطلاعات برایش می شود مفهوم کاغذ پیش رویش. بعد از چند بار انجام این کار، با کاغذهای مختلف از جنس ها، و رنگ مختلف متوجه می شود که خصوصیات مشترکی بین همه آنها که لمسشان کرده و شاید به طرف صورت و دهانش برده وجود دارد. مغز او این خصوصیات مشترک را به عنوان مفهوم این جنس به خاطر می سپارد. تا دیگر لازم نباشد هر کاغذی را که دید مجددا آزمایش کند. از این به بعد هر کاغذی با هر جنس و شکل و رنگی که ببیند مغزش آن مفهوم قبلی را از کاغذ فراخانی می کند و او متوجه می شود که با کاغذ سر و کار دارد و نیازی به بررسی مجدد نیست. بعدا که بفهمد نام این جسم کاغذ است با شنیدن نام کاغذ مفهوم کاغذ در ذهنش فراخانی می شود و به این ترتیب کلمه کاغذ برایش معنا میابد در سالهای بعد که نوشته کلمه کاغذ را بیاموزد با دیدن این واژه کلمه کاغذ و مفهوم کاغذ در ذهنش فراخانی میشود و نوشته کلمه کاغذ برایش معنا میابد یک بچه آهو که یک بار دیده باشد گلهش از دست موجودی با سر و شکل شیر فرار کرده است تصویر منیز ترس و حیجان آن تجربه اول در مغزش ذخیره می شود از آن به بعد با دیدن هر گربسان مشابه آن شیر آن تصویر و حس ترس و وحشت همراهش فراخانی می شود و در پیش واکنش هایی مثل ترشوه آدرنالین افزایش ضربان قلب و فشار خون و اقدام برای فرار صورت میگیرد. در واقع مفهوم شیر در ذهن آن بچه آهو شکل میگیرد و دیگر لازم نیست هر شیر جدیدی که میبیند را دوباره امتحان کند تا بفهمد آن هم درنده و خطرناک است یا نه. تصاویر، صداها، بوها و تعمها پیش از ورود به قشر مغز ما، وارد ساقه مغز و دستگاه لیمبیک می و احساسات و عواطفی که متعاقب تجربه هر کدام از آن تصاویر، صداها، بوها و تعمها به ما دست می نیز در این مناطق ذخیره می گردند و در برخورد مجدد با آن تصاویر صداها، بوها و تعمها، احساسات مزبور هم فراخانی می و به ترتیب معنای هر چیزی در ذهن ما شکل می گیرد. بدون داشتن حافظه ما هیچ معنا و مفهومی از آنچه توسط هواسمان دریافت می کنیم درک نخواهیم کرد. معنایی که یک نوزاد انسان از دیدن یک شیر درک می کند، با معنایی که یک انسان بزرگ سال از دیدن همان شیر درک میکند و با معنایی که یک گورهخر بالغ از دیدن همان شیر درک میکند متفاوت است و بستگی به آن اطلاعات و احساساتی دارد که پس از دیدن شیر توسط مغز هر کدام از این سه موجود فراخانی میشود و این اطلاعات و احساسات فراخانی شده یا به عبارت بهتر مفهوم شیر در ذهن هر یک از این سه موجود بستگی به گذشته یا تاریخ منحصر به فردی دارد که هر یک از این سه موجود پشت سر گذاشته و در کانونهای مختلف مغزش پردازش و ذخیره شده است اگر یک کره گورخر و یک بچه شیر را با هم بزرگ کنیم و آن دو با هم دوست باشند وقتی گوره بالغ شود ممکن است با دیدن شیرهای دیگر پا به فرار نگذارد یعنی مفهومی که از شیر در ذهن این گوره شکل می‌گیرد به واسطه تاریخ منحصر به فرد این گوره با مفهومی که از شیر در ذهن گوره خرهای رها در طبیعت شکل می‌گیرد متفاوت است و دیدن شیر آدرنالین و ضربان قلب او را بالا نمیبرد در دوران بارداری و نیز زمان به دنیا آوردن کودک و در آغوش گرفتن او برای اولین بار اتفاقاتی در مغز و دستگاه لیمبیک می افتد که موجب می شود پس از آن هر بار که مادر چهره کودکش را می بیند آن چهره برایش معنی خاصی را تدایی و احساس خاصی را برانگیزد که همان چهره برای زنان و مردان دیگر آن معنی را تدایی و آن احساس را برانگیخته نمی کند. پس این مادر نسبت به آن کودک احساس مادری دارد و دیگران نسبت به آن کودک این حس را ندارند. اگر همین مادر به دلایلی دچار فراموشی شود چهره فرزندش به گونه ای دیگر برایش معنا می بدون حافظه دیگر نه میدانیم عشق چیست و نه نفرت چیست نمیدانیم نوستالژی چیست و نه امید چگونه احساسیست. احساسی است ما برای فکر کردن و نقشه کشیدن برای آینده نیاز به حافظه داریم افراد دچار آلزایمر از نقشه کشیدن برای آینده ناتوان میشوند و وقتی از آنها میپرسند میخواهی امروز چه کار کنی میگویند نمیدانم برای تجسم آینده نیاز به حافظه داریم چرا که باید ابتدا ایده های مختلف را در ذهنمان تجسم کنیم و سپس آنهایی که در شرایط موجود شدنی هستند را انتخاب نماییم و این انتخاب را هم به حافظه بسپاریم همه این مراحل بر عملکرد حافظه استوار است ما بدون حافظه هیچ چیز را نمیفهمیم بدون حافظه حتی نمیفهمیم آنچرا که اکنون میبینیم و میشنویم مربوط به زمان حال است زیرا معنای زمان را نیز نمیفهمیم به واسطه ی داشتن حافظه است که میفهمیم چیزی به نام گذشته وجود داشته که دیگر الان وجود ندارد اما به هر حال آن را به خاطر میآوریم به واسطه وجود حافظه است که میفهمیم چیزی به نام آینده وجود دارد که خواهد آمد. چون یادمان هست که گذشته و حال نیز وجود نداشتند اما آمدند و به وقوع پیبستند و تبدیل به گذشته شدند. بدون حافظه ما فقط در زمان حال زندگی می کردیم و آن هم یک زمان حال کاملا بدون معنی و مفهوم. تمام حرکات عادتی ما مثل راه رفتن و دوچرخه سواری و رانندگی و حتی مهارت غذا خوردن با قاشق و چنگال نیز در حافظه ما ذخیره شده است و بدون وجود این نوع از حافظه ساده ترین کارها نیز بسیار دشوار یا غیر ممکن می بود چنان که با یک سانحه برای بخشی از مغز مثلا مخچه ممکن است چنین مهارتهایی را به کلی از دست بدهیم. بدون حافظه هیچ شناختی از خودمان نداشتیم و نمیدانستیم چه کسی هستیم چه خصوصیاتی داریم؟ چه شخصیتی داریم؟ از چه چیزی خوشمان میآید؟ از چه چیزی بدمان میآید از چه چیزی می ترسیم. و با چه چیزی آرامش میابیم؟ بدون حافظه بیشتر شخصیت ما و خصوصیات ما اصلا شکل نمی گرفت بدون حافظه نه زبانی برای گفتن منظورمان داشتیم و نه حتی می توانستیم فکر کنیم ما فارسی زبانها برای فکر کردن از زبان فارسی استفاده می کنیم و بدون زبان فکر کردن بسیار محدود می شود بدون داشتن حافظه حتی موضوعی برای فکر کردن هم نداشتیم. چون هیچ تصویری و تصوری و صدایی و مزهی و بویی در ذهنمان فراخانی نمیشد تا با تداعیهای بعدی و فراخانی تصورات پی, در پی و مربوط به آن تصویر اولیه رشته ای از تفکر در ذهن ما ایجاد شود بدون حافظه حتی درکی از ابعاد هم نداشتیم در زمان نوزادی با حرکت دادن و جلو و عقب بردن اشیا کم کم می فهمیم که فضای اطرافمان دارای طول عرض و عمق است کسانی که از کودکی از نابینایی یکی از چشمها محرومند تصاویر اطراف را دو بعدی می بینند و درکی از عمق تصاویر ندارند می توان نتیجه گرفت همانطور که مفهوم عمق با پردازش و ثبت اطلاعات از دید دوچشمی در مغزمان برایمان ایجاد شده اگر ثبت اطلاعاتی وجود نداشت یعنی اگر ای وجود نداشت طول و عرض هم برایمان بیمعنی بود و لذا درکی از ابعاد هم نداشتیم و بدین ترتیب بدون حافظه اگر چه چشمان سالمی هم میداشتیم اطلاعاتی که از چشم ها به مغزمان وارد میشد، حتی از نظر ابعاد هم بی معنی بود. مایک می در سن سو و نیم سالگی در اثر بروز یک انفجار شیمیایی بیناییش را از دست داد. اما توانست فرد موفقی شود و با کمک جهتیابی توسط علائم تولید کننده صدا در رشته اسکی پاراولمپیک قهرمان شود. بعد از چهل سال نابینایی فهمید میتواند سلامت چشمش را با پیوند سلول های بنیادی یابد. اما پس از عمل مشکل دیگری وجود داشت. مغز او قادر به تفسیر اطلاعات دریافتی از چشم نبود. قسمتی از مغزش یعنی کورتکس بینایی که با دیدن در ارتباط بود به خدمت باقی حواسش مانند شنوایی و لامسه در آمده بود. او چهره بچه هایش را میدید. ولی نمیتوانست بگوید بچه هایش شبیه چه هستند و نمیتوانست آنها را از هم بازشناسد. وقتی مایک از اتاق معاینه بیرون آمد و قدم در راه رو گذاشت، قالی، تابلوهای روی دیوارها و چارچوب درها برایش معنایی نداشتند. از ماشینها و ساختمانها و آدمها سر در آورد. بعد از یک ماه کم کم توانست تفاوت افراد و را بفهمد. حال یک سوال بسیار مهم پیش می آید. این حافظه که اینقدر اهمیت دارد چگونه کار می کند؟ می چرا این سوال را مطرح می کنم؟ چون می خواهیم بفهمیم آیا شانسی وجود دارد تا بعد از مرگ این اطلاعات و این قدرت درک و فهم و این شخصیت و این احساسات و عواطف و این طرز فکر و زاویه نگاهمان به هر چیزی و این توانایی گفتگو به زبان فارسی و این توانایی دیدن و شنیدن و فهمیدن و فهماندن را با خودمان ببریم در حالی که بدن و مغزمان میپوسد و از بین میرود اگر آری چگونه عنوان حافظه چگونه کار می کند؟ در آغاز دوران کودکی همه پدیدههای اطراف ما دارای ارزش کم و بیش یکسانی هستند و توجه ما به هر چیز با اهمیت و بی اهمیتی جد می شود. هر چیزی با جزئیات بی اهمیتش می تواند در حافظه ما برای زمانی کوتاه یا بلند ثبت شود. حافظه دیداری ما در کودکی می تواند چنان باشد که یک تصویر را با جزئیات آن به خاطر بسپارد. به این حافظه حافظه فوتوگرافیک یا آیدتیک میگویند در دهه‌های 1960 و 1970 رالف هابر و یان فنترس و همکارانشان دریافتند که بخشی از کودکان مدارس ابتدایی آمریکا شامل هر دو جنس و در همه نجات ها و فارغ از عملکرد درسیشان این نوع از حافظه را دارند رالف هابر تصویری رنگی از آلیس و گربه چشایر را از کتاب مصور آلیس در سرزمین عجایب به کودکان نشان می‌داد. تصویر به مدت کوتاهی به کودکان نشان داده می‌شد. مدتی بعد کودکان می‌توانستند به تفصیل به پرسشهایی درباره این تصویر پاسخ دهند. از جمله هنگامی که پرسیده می‌شد چند نوار روی دوم گربه قابل رؤیت بود. رفتار کودکان آنچنان بود که گویی نوارها را از نوعی تصویر که در ذهن دارند میشمورند و سپس جواب می‌دهند به خاطر سپردن این همه جزئیات مزیتی برای انسانها ندارد و مغز ما با گذشت زمان بنابر تجربیاتی که پشت سر میگذاریم میآموزد جزئیات بی اهمیت را فیلتر کند و فقط بخش کوچکی از اطلاعات را برای مدتی کوتاه و گاهی برای مدتی طولانی در یاد نگه دارد مثلا سر و صدای زیاد و گفتگوهای فراوانی به گوش ما میرسد و وارد گوش ما می شود اما بسیاری از آنها حتی در حافظه کوتاه مدت ما هم ثبت نمی شود. کودک شهری به خاطر می که همسایگانش هر کدام چه اتومبیلی دارند ولی وقتی به روستا می رود فقط گاو و گوسفند و درخت و خانه می و جزئیات محیط روستا توجهش را جلب نمی کند. اما کودک روستایی در شهرها فقط ماشین ها را می بینند و به مدل و نام آنها کاری ندارد. در حالی که این کودک روستایی متوجه است که کدام همسایه چند گاو نر و چند گاو ماده دارد و نام هر بوته و درخ را در جاده روستایی به تفکیک می داند و به آن توجه می کند و به خاطر می سپارد تا در فصل مناسب منتظر میوهایی که می و می خواهد از آنها بچیند باشد. می‌دانیم که بسته به اهمیت اطلاعات، بعضی از آنها را به مدت کوتاه و بعضی را به مدت طولانی در خاطر نگه می‌داریم. می‌دانیم گاهی خاطرات اخیر را به راحتی از یاد می‌بریم، اما خاطرات قدیمیتر را به خوبی به یاد می بیماری بیماری‌هایی وجود دارند که حافظه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در بیماری آلزایمر که معمولاً در افراد سالخورده بروز می‌یابد، مغز فرد مبتلا کوچکتر شده و نورون‌ها یا یاخته‌های های ظاهر تغییریافتهی پیدا می کنند. مبتلایان به آلزایمر به طور ترسناکی نبود احساس هویت شخصی و نداشتن دستیابی به اندوخته خاطره شخصی را تجربه می کنند. در بیماری دیگری به نام سندرم کرساکوف نیز مغز فرد کوچک می شود و از حافظه از دست رفته به خصوص مربوط به رویدادهای اخیر رنج میبرد و نمیتواند تکالیف حافظه ای لفظی و غیر لفظی را به جا بیاورد و در انجام کارهای بسیار ساده ناتوان می شود هرچند خاطرات گذشته دور را به یاد می آورد یعنی مشکل آنها حافظه کوتاه مدتشان است حوادثی که برای مغز پیش می آید هم می تواند حافظه را تحت تاثیر قرار دهد گاهی ضربه به سر و بیهوش شدن باعث می شود شخص پس از بهوش آمدن نتواند رویدادهای بلافاصله بلا قبل از بیهوشی را به یاد آورد. پس از اقمای مربوط به بیهوشی یا اختلال در فعالیت الکتریکی مغز در پی شک درمانی نیز، نوعی فراموشی به نام فراموشی قهقرایی دیده می شود که در آن به مدت سی دقیقه به یاد سپاری متوقف می شود. در سال 1953 یک بیمار کانادایی که مبتلا به سر بود در سن 27 سالگی برای درمان تحت عمل جراحی قرار گرفت و بخشی از هیپوکامپ و آمیکدالا و بخشی از لب گیجگاهی او برداشته شد و سر او درمان شد. ولی از آن به نمی نمیتوانست چیز جدیدی را در حافظه بلند مدت خود نگاه دارد. او میتوانست همه چیز را از قبل از عمل به یاد آورد. و نیز می توانست برای مدت کوتاهی وقایع را به خاطر بسپارد. اما چیزی در حافظه باقی نمی ماند. او همیشه سن خود را کمتر از سن باقی براورد می کرد و نمی توانست همسایگان جدیدش را به خاطر بسپارد. او را در دنیا علم به نام HM که حروف اول اسم او بود میشناسند. این پدیده ها به ما می گوید برای فهم چگونگی عمل کرده حافظه و اتفاقاتی که در حینه به خاطر سپردن و به خاطر آوردن میافتد، باید به سراغ مغز برویم و عملکرد های مغز یا نورونها را در جریان یادگیری و به خاطر سپاری بررسی کنیم. عنوان نورونها و حافظه. یاخته های عصبی یا نورونها که واحد های اصلی سازنده مغزمان هستند قابلیت هدایت پالس‌های عصبی را دارند حرکت جریان الکتریکی در نورون‌ها با حرکت جریان الکتریکی در سیم فلزی متفاوت است در سیم فلزی به دلیل خاصیت فلزی اتم‌های سازنده آن الکترون‌های شناوری وجود دارند که می‌توانند به هر سوی سیم روان شوند کافی است دو سر سیم به منبع الکتریکی دارای اختلاف پتانسیل یا ولتاژ وصل شود تا الکترون‌ها از یک طرف به طرف دیگر هل داده شوند الکترون‌ها از سر منفی منبع الکتریکی وارد سیم می‌شوند و الکترون‌های آن سوی سیم به سر مثبت منبع الکتریکی هل داده می‌شوند و وارد آن می‌گردند اما ماجرای جریان الکتریکی سلول‌های عصبی از این قرار است غشاء یا دیواره نورون‌ها در حالت استراحت به گونه ای عمل می کنند که یونهای سودیوم که بار مثبت دارند را به داخل راه نمی دهد. بنابراین داخل دیواره نسبت به بیرون آن 70 میلی بار الکتریکی منفی دارد یا اختلاف پتانسیلی معادل 70 میلی بین درون و بیرون سلول عصبی برقرار است. یا درون قشا نسبت به بیرون آن 70 میلی قطبی یا پولاریزه است. کافیست چیزی مثل یک محرک مکانیکی یا یک جریان الکتریکی یا یک مادی شیمیایی دیواره را چنان تحت تاثیر قرار دهد تا راه برای نفوظ یون سدیوم به داخل باز شود. هجوم یون سدیوم به داخل در ابتدا باعث می شود که در آن نقطه از نورون بار مثبت داخل سلول به بیرون آن چهل میلی ولت هم بیشتر شود. یعنی اختلاف پتانسیل از منفی هفتاد به مثبت 40 میلی ولت تغییر می‌یابد این تغییر به قسمت‌های مجاور دیواره همان سلول سرایت می‌کند و موجی از تغییر اختلاف پتانسیل یا پوت زدایی در سراسر دیواره نورون حرکت می‌کند به این موج پتانسیل عمل گفته می‌شود البته ناحیه قطب زدایی شده به سرعت و با صرف انرژی یون های سدیم را به بیرون میراند و به حالت اول برمیگردد و آماده دریافت تحریک بعدی می شود نورون از یک جسم سلولی تشکیل شده که هسته سلول در آن قرار دارد یک طرف جسم سلولی رشته قرار دارد که توسط آنها تحریکات از نورون قبلی دریافت می شود و به آنها دندریت گفته می شود در طرف دیگر رشته بلندی قرار دارد که تحریک دریافت شده را به نورون بعدی هدایت می کند. به این رشته آکسون گفته می شود. انتهای آکسون منشعب می شود و به این ترتیب هر نورون می تواند پیامش را به نورون های متعددی صادر کند. محل اتصال آکسون یک نورون به دندریت های نورون بعدی را پیوندگاه یا سیناپس می نامند. خاصیت مهم این محل این است که با رسیدن پتانسیل عمل به این ناحیه کیسه‌های ریزی به نام آبدانک یا وزیکول که در داخل سلول قرار دارد به دیواری قطب زدایی شده ی سلول می‌چسبد و محتوای خود را خالی می‌کند این محتوا شامل ماده شیمیایی است که به آن ناقل عصبی یا نوروترانسمیتر میگویند ناقل عصبی می فضای بین آکسون و دندریت که به آن فضای سیناپسی گفته می شود را طی کند به هایی بر روی دیواره دندریت های سلول بعدی بچسبد و نفوذ پذیری غشاء نورون بعدی را تغییر دهد و جریان ورود یون سدیوم به داخل سلول بعدی یا همان پتانسیل عمل را آغاز کند. به این ترتیب پیام الکتریکی به پیام شیمیایی و پیام شیمیایی دوباره به پیام الکتریکی تبدیل می شود و پتانسیل عمل سلول اولی به سلول بعدی انتقال می آبد. همین خاصیت است که جریان الکتریکی را در بین سلول های عصبی یک طرفه کند. یعنی ساختار سیناپس ای است که پتانسیل عمل فقط می‌تواند از آکسون به دندریت منتقل شود نه برعکس انواع مختلفی از ناقل‌های عصبی وجود دارند مثل استیل دوپامین، گلوتامات و سروتونین که هر کدام گیرنده مخصوص به خود را روی سلول بعدی دارند و باید روی آن گیرنده بنشینند تا عملشان را انجام دهند. بعضی ناقل‌های عصبی به جای ایجاد تحریک در سلول بعدی، جلوی تحریک سلول بعدی را هم می‌گیرند. مثل گابا یا گاما آمینو بوتیریک اسید که وقتی روی گیرنده مخصوص خودش در دیواره نورون بعدی می‌نشیند، اختلاف پتانسیل قشای آنسل رو را از منفی 70 میلی ولت به منفی 75 میلی ولت افزایش می دهد و به این ترتیب تولید پتانسیل عمل را برای نورون بعدی دشوار می کند. داروهای آرامبخش بخش بنز و دیازپینی مثل دیازپام، الکل و داروهای بیهس کننده عمومی یا بیهوشی به این گیرنده ها و اثر گابا را تقلید می کنند و موجب آرام شدن رفتار و کند شدن عملکرد سیستم عصبی می گردند. ناقل های عصبی آزاد شده در فضای سیناپسی یا به گیرنده بر به روی نورون بعدی میچسبند و عمل خود را انجام می دهند یا به سرعت تجزیه می شوند و از بین می روند و یا به سرعت توسط سلول اول باز جذ می گردند تا دوباره استفاده شوند معمولاً داروهای اعصاب یا موجب افزایش تولید و ترشوه ناقل‌های عصبی می شوند. یا مانع تجزیه و از بین رفتن آنها می شوند. یا مانع بازجذ به آنها می شوند. و به این ترتیب غلزت آنها را در فضای سیناپسی افزایش می دهند. یا روی گیرنده مربوطه نشسته به عمل ناقل عصبی را تقلید می کنند و یا روی گیرنده مربوطه نشسته ولی عمل ناقل عصبی را تقلید نمی کنند بلکه آن گیرنده را مسدود و بی اثر می تا ناقل عصبی یا ناقل شیمیایی اصلی نتواند کارش را بکند. معمولاً با این مکانیزم هاست که داروهای اعصاب به درمان اختلالات عصبی و روانی مثل پارکینسون، آلزایمر، افسردگی، شیزوفرنی، ازتراب، بیخوابی و سر کمک می کنند. مواد مخدر و روانگردان هم با همین ترتیبات عمل می کنند. این را هم می‌دانیم که معمولا سلول مغز پس از تکامل مغز در دوران جنینی و کودکی دیگر تکثیر نمی‌شوند و جز در مواردی نادر با سلول‌های جدیدی جایگزین نمی‌گردند اما مداربندی نورون‌ها و ارتباط آنها با یکدیگر می‌تواند در اثر ایجاد ها یا پیوند های جدید بین سلول‌ها تغییر یابد یک نورون می‌تواند از طریق انشعابات آکسونش با چندین نورون دیگر سیناپس داشته باشد و یا اینکه با یک نورون دیگر چندین سیناپس برقرار کنند با این مقدمات آماده ایم که برویم سراغ حافظه طی چند دهه پژوهش مشخص شده که یادگیری و به خاطر سپاری حداقل با دو نوع تغییر در سیناپس های بین نورون ها در ارتباط است در یادگیری کوتاه مدت یا حافظه کوتاه مدت مثل به خاطر سپردن یک عدد پنج رقمی برای چند ثانیه تا چند دقیقه زنجیری از واکنش در نورون‌های مربوط به حفظ آن مطلب به وجود می‌آید که در نهایت موجب می گردد در سیناپس‌های مربوطه ناقل عصبی بیشتری و برای مدت طولانی‌تری از نورون اول ترشوه گردد و بنابراین های بعدی مدت بیشتری جریان الکتریکی یا پتانسیل عمل ایجاد نمایند یعنی تقویت کوتاه مدت سیناپسی صورت گیرد تحقیقات برای کشف چگونگی کارکرد حافظه با کار بر روی جانبران ساده‌ای چون حلزون دریایی آپلیزیا شروع شد جالب اینکه ساختار و عملکرد سلولهای عصبی و ناقلهای عصبی این جانوران ساده تفاوت مهمی با جانوران پیچیده و انسان ندارد در تحقیقات مشاهده میشد که در حیوانات مورد آزمایش با استفاده از هر ماده شیمیایی که جلوی هر یک از مراحل زنجیره واکنشهای تقویت سیناپسی را می گرفت میشد جلوی عملکرد حافظه کوتاه مدت را گرفت یعنی جانوران حتی به مدت کوتاه هم نمیتوانستند چیزی را به خاطر بسپارند در مورد حافظه بلند مدت این تقویت سیناپسی دائمی می شود به این صورت که تعدادی سیناپس جدید به وجود می آید مثلا کرک بیلی و مریچن در مورد جانور مورد مطالعه اشان، کشف کردند که یک نورون حسی، یعنی نورونی که یک سر آن به گیرنده حسی مثلا در پوست متصل است و پیام های حسی دریافتی را به شکل پتانسیل عمل انتقاد می دهد. به تنهایی تقریبا 1300 سیناپس با 25 نورون دیگر برقرار می از این 1300 سیناپس تنها درصد فعال هستند و ناقل عصبی رها می در جریان تحریک مداوم و شدید این نورون حسی جهت ایجاد حافظه ی دراز مدت تعداد سینابس ها به دو عدد افزایش می‌یابد و تعداد سینابس های فعال از چهل درصد به شهست درصد ارتقا پیدا میکنند. نورون های بعدی هم برای ارتباط با این نورون زائده ها یا دندریت های جدیدی میسازند، رابطه بهتری برقرار کنند به مرور زمان که خاطر رنگ باخته و محو می شود واکنش های تقویت یافته دوباره به حالت عادی برمیگردند گردند و تعداد سیناپس ها از دو به حدود هزار کاهش پیدا می کند یعنی اندکی بیشتر از تعداد اولیه خود باقی می ماند. شاید به این دلیل که جانور در مرتبه بعدی مواجهه با آن محرک واکنش به آن را راحتتر یاد بگیرد اشکالی از یادگیری هستند که برای آنها لازم است تعداد سیناپسا و نیز درصد های فعال کاهش یابد وقتی به موشها داروهایی جهت جلوگیری از پروتین سازی تزریق می‌شد تا نتوانند سیناپس جدید که ساختار پروتئینی به بسازند حافظه کوتاه مدت آنها عملکرد خود را حفظ می‌کرد اما روز بعد چیزی از محرکا و آموزش‌ها در یاد نداشتند یعنی حافظه بلند مدتشان شکل نمی‌گرفت اما اگر داروهای جلوگیری از ساخت پروتئین را چند ساعت بعد از آموزش به آنها تزریق می‌کردند آنچنان که فرصت کافی برای ساختن سیناپس‌های جدید داشته باشند حافظه بلند مدت آنها در رابطه با محرک ها و آموزش ها شکل می گرفت و رفتارشان در روزهای بعد نشان می‌داد که همه چیز را به یاد میآورند. خلاصه اینکه حافظه رابطه مستقیمی با ساخت و فعالیت سیناپس دارد و اختلال در ساخت و فعالیت سیناپس موجب جلوگیری از تشکیل خاطره می‌گردد. یافته‌ها در مورد های تشکیل حافظه بسیار قابل توجه و پر از جزئیات هستند و پیامی که در مباحثی چون تجربه خروج از بدن و تجربه نزدیک به مرگ برای ما دارند این است که همه خاطرات از جمله خاطرات مربوط به این قبیل تجارب در مغز ما شکل گرفتهاند و به همین جهت قابل یادآوری هستند پس حالا ما برای توضیح این تجارب با دو نظریه روبرو هستیم نظریه اول این است که این تجارب بر فعالیت های مغزی خودمان هستند که پس از آن در مغزمان تبدیل به خاطره شدهاند و طبعا با هر بار تحریک مجدد مدارهای نورونی مربوط به این خاطرات و جریان یافتن پتانسیل عمل در آنها این خاطرات و تصاویر بازخانی و یادآوری میگردند. اگر زمانی سلول های مغزی ما دچار آسیب شوند و یا سیناپس‌های مربوط به این خاطرات کاهش یابند یا غیرفعال شوند خاطرات این تجارب نیز کمرنگ رنگ می‌شوند و یا از بین می می‌روند. امید داریم هر سؤالی که در رابطه با این نظریه اول به ذهن ما برسد را به کمک تحقیقات روی کارکردهای مغز و های آن و های مختلفش پاسخ دهیم. نظریه دوم این است که ما عنصر یا جوهری غیر مادی هستیم که در هین این تجارب واقعا از بدن خود خارج می‌شویم و به بیرون از بدن یا به حوالی می می‌رویم. حال دیگر امیدی نداریم به سوالاتی که در رابطه با این نظریه دوم به ذهنان می‌رسد با هیچ تحقیقی پاسخ دهیم، چرا که راهی برای تحقیق روی انصر غیر مادی نداریم. مثلا چگونه می‌توانیم به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم؟ چرا وقتی بیرون از بدنمان رفتیم هنوز چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن داشتیم و حواس دیگری هم داشتیم که کار میکردند؟ چشم و گوش و دیگر حواس بدن مادی ما که از کار افتاده بود. این چشم و گوش و حواس جدید از کجا پیدایشان شد و چگونه به این سرعت مجهز به همه ابزار تشخیص محیط اطرافمان شدیم؟ چرا وقتی بیرون از بدن رفتیم و به حافظه درون مغزمان دسترسی نداشتیم آنچه با آن حواسمان که معلوم نیست چطور ناگهان صاحبشان شدیم درک می کردیم برایمان معنی داشت. مگر می شود بدون دسترسی به حافظه ایمان بتوانیم بفهمیم آنچه از بیرون بدنمان به آن نگاه می کنیم میز است، صندلی است، تخت است، فاز است یا فردی است که میشناسیم. چگونه در آن لحظات بدون دسترسی به حافظه معنی پرواز، آرامش، تونل، نور، آشنا، قریبه، خدا، طول، عرض، ارتفاع، زمان و غیره را فهمیدیم؟ آگاهی ما بدون حافظه هیچ چیز را درک نمی کند. گاهی اشخاصی که دچار سکتهی مغزی گسترده و زایعه وسیع در مغز می شوند اگرچه به نظر می آید آگاهی دارند. اما قدرت تکلم، حافظه اخباری و شخصیتشان را به طور کامل از دست می دهند و به حال کودکی در میآیند که باید از ابتدا آموزش ببیند و کمکم کم شخصیتی جدید پیدا کند. پاورقی Declarative مموری یا حافظه اخباری یا اعلامی حافظه است که آن را آگاهانه به یاد می‌آوریم و بیان می کنیم. مثل کارهایی که در طول روز کرده ایم یا نام اشیاء و افراد در مقابل آن حافظه کار کردی یا پروسیجرال مموری قرار دارد که آن را آگاهانه به یاد نمی آوریم و تقریبا نمی توانیم آن را بیان کنیم مثل مهارت مربوط به دوچرق سواری و رانندگی و راه رفتن و ورزش مختلف و استفاده از قاشق و چنگال که اگرچه در حافظه ما جای دارند اما نمی به راحتی چگونگی انجام آنها را به زبان بیان کنیم ادامه مطلب با این حساب آیا راهی هست که شخص به بیرون از بدنش برود در حالی که قدرت تکلم حافظه و شخصیتش که تا این حد به کار کرده درست سلول های مغزش و آرایش سیناپسهای بین این سلول ها وابسته است را نیز با خود ببرد، اگر از بدنمان بیرون رفته بودیم و مغزمان دیگر در این تجربه دخالتی نداشت، چرا این تجربه منجر به تقویت و تشکیل سیناپسها ها در مغزمان شد آنچنان که با ایجاد پتانسیل عمل در مدارات مربوطه بتوانیم آن تجربیات بیرون از بدن را به یاد آوریم به فرض که بتوانیم بیرون از بدن و بدون دسترسی به حواس بدن و خاطرات و حافظه موجود در مغزمان ببینیم و بشنویم و دیده‌ها ها و شنیده را هم درک کنیم و به زبان مادری خودمان با دیگران و فرشتگان و خدایانمان حرف بزنید و معنای حرفهای آنها را هم بفهمید. تب هم باید بعد از اتمام تجربه و بازگشت به بدن دیگر چیزی به یاد نیاوریم. چون چیزی در مغزمان ثبت نشده مغزمان فعالیتی نداشته خبری از آنچه بر روح میگذشته نداشته و هیچ سیناپسی تقویت یا ساخته نشده از تا خاطرهای کوتاه مدت یا بلند مدت ذخیره شود از بین دو نظریه فوق چگونه باید دست به انتخاب زد در حالت عادی یعنی وقتی منطق ما تحت فشار از طرف ناحیه لیمبیک و ساغه مغز قرار ندارد و قشر مغزمان هم تنبلی نمی کند تا اولین نظریهی که دم دستش می آید را برگزیند. و خلاصه وقتی تمام و کمال منطقی عمل می کنیم تا به شناخت صحیح و منطبق بر واقعیت برسیم روش کارمان این است که برای توضیح یک پدیده از بین چند نظریه آن را انتخاب می کنیم که اولا آن نظریه با دیگر اطلاعاتی که در مورد دنیای اطرافمان داریم در هماهنگی انسجام و سامان باشد. ثانیاً آن نظریه ما را مجبور نکند برای اثبات درست بودنش یا به عبارتی برای نجاتش دست به ابداع و خلق نظریات جدید بیشتری بزنید. در منطق به این رویه دوم اصل تیغ اوکام میگویند. در مورد رویه اول یعنی انتخاب نظریه منسجم و به سامان با دیگر باورهایمان مثالی می زنم. همسایه ای دارم که سالهاست او را می‌شناسم و چون همیشه از او رفتاری حاکی از ادب، اخلاق، وجدان بیدار، دلسوزی نسبت به دیگران و زندگی با قناعت و شرافت دیده‌ام باور کردهام که او مردی با اخلاق و قانع و شریف است یک روز از پنجره به پیرون نگاه میکنم و میبینم او در حال تلاش است تا با کلیدش در اتومبیل مرا باز کند. اتومبیل من و اتومبیل او هم مدل و هم رنگ هستند. دو نظریه پیش روی من است. یک او میخواهد اتومبیل مرا بدزدد. دو اتومبیل مرا با اتومبیل خودش اشتباه گرفته. نظریه اول با بقیه باورهای من در مورد او انسجام ندارد. و اگر آن را برگزینم ساختمان باورهای من دچار سستی و نابسامانی می شود این نظریه که او می خواهد اتومبیل مرا بدزدد به این باور من که او مرد شریفی است چسبد و با آن در نابسامانی است نظریه دوم با بقیه باورها و شناخت من در مورد او انسجام دارد و اگر آن را برگزینم ساختمان باورهای من منسجم و به سامان می ماند. پس به اینکه سر خود را از پنجره بیرون آورم و با عصبانیت فریاد بزنم آقای همسایه خجالت نمیکشید میخواهید ماشین مرا بدزدی با مهربانی و لبخان می گویم آقای همسایه اتومبیل شما آن است که آن طرف پارک شده در مورد رویه دوم یعنی اصل تیقه اوکام هم به سراغ همان مثال می می‌رویم اگر من به همسرم بگویم ببین آقای همسایه دارد سعی می کند اتومبیل ما را بدزدد ممکن است همسرم بگوید چنین کاری از او بعید است کسی که اهل دوستیست است تواند اخلاق و رفتاری شبیه این همسایه ما داشته باشد یعنی همسر من به سامانی فرضیه من با باور قبلی ما نسبت آقای همسایه اشاره می کند. حال من ناچارم یا از نظریه هم دست بکشم یا برای اثبات درستی آن دست به خلق نظریهای دیگر بزنم. و مثلا به همسرم بگویم لابد تمام این سالها داشته ریاکاری می کرده تا اعتماد ما را جلب کنم. اکنون من برای اثبات این نظریه جدید یعنی ریاکار بودن همسایه نیاز به جمع‌آوری شواهد جدید دارم که کاری بسیار دشوار و شاید نشدنی باشد اگر من در شرایط عادی باشم و نسبت به آقای همسایه حس خاصی نداشته باشم قاعده تیغ اوکام را بدون آنکه نام قاعده را بدانم در ذهنم اجرا می‌کنم و به دنبال نظریه دوز بودن آقای همسایه نمیروم و همان نظریه ساده را که میگوید همسایه ام هم ماشین را اشتباه گرفته برمیگزینم تا مجبور به خلق فرضیه های اضافه نشویم قاعده تیق و می میگوید از بین چند نظریه که برای توضیح یک پدیده مطرح می شوند باید آن را برگزید که جهت اثباتش نیاز به خلق نظریهای کمتری داریم و بقیه نظریه ها را کنار گذاشت اما اگر نسبت به آقای همسایه کینه و نفرتی داشته باشند، بخش های کوهن مغز من قشر مغزم را وامی دارند تا نظریه دوز بودن او را انتخاب کنم و به راحتی برای اثبات درستی این نظریه نظریات بعدی مثل ریاکاری و ظاهرسازی طولانی مدت و توطعه آمیز او را هم ابداع کنم و نیازی به اثبات این نظریات اضافی احساس نکنم و از نابسامان شدن مجموعه باورهایم هم ناراحت و پشیمان خاطر نباشم و با دیدن. همین صحنه حس شناخت کاملی نسبت به دوز بودن همسایی هم در من شکل بگیرد و سرم را با عصبانیت از پنجره بیرون ببرم و بر سر همسایی هم فریاد بکشم و آبر و ریزی راه بیندازم برگردیم سراغ پدیده های تجربه خروج از بدن و تجربه نزدیک به مرگ این نظریه که این تجربه ها صرفاً محصول فعالیت های مغز است و هیچ جوهر یا روح یا آگاهی یا انصالی از بدن ما بیرون نرفته است با بقیه اطلاعات ما درباری فیزیولوژی مغز و حاکم بودن قوانین فیزیک و شیمی بر مغز و تأثیراتی که داروها و بیماریها و زایات مغزی بر پدیده های ذهنی و روانشناختی ما دارند و شیره شکلگیری حافظه در مغز در انسجام و سامان است همچنین نیاز به خلق نظریه دیگری برای اثبات درستی این نظریه نداریم و فقط کافیز به دنبال شواهد بیشتر برای رد یا اثبات خود این نظریه باشید که به نظر امپیش شدنی می نماید. چون برای این کار فقط با عالم محسوس سر و کار دارید. پیگیری و راستی آزمایی این نظریه می تواند منجر به پیشرفت علم شود. همه مردم جهان هم میتوانند در این مسیر کمک کنند و نتایج آن را درک کنند تحقیقاتی چون تحقیقات اولاف بلنکه و آزمایشات روی خلبانها و فضانوردان که به آنها اشاره شد از همین دست راستی آزمایی ها هستند اما نظریه خروج روح یا آگاهی از بدن با آنچه در مورد کارکرد مغز و حافظه و حواس و غیره میدانیم در هماهنگی و انسجام نیست و برای رفع این نابسامانی در باورهایمان ناچار میشویم دست به خلق نظریات جدید بزنیم. مثلا ممکن است از ما سوال شود، چرا روح یا آگاهی ما که عملکردش تا لحظه خروج از بدن تا این حد به حافظه و عملکرد سلول های مغزی و نیز به وجود چشم و گوش و حواس همین بدن کنونیمان برای درک دنیای اطرافش وابسته بود؟ بعد از خروج از بدن و قطع ارتباط با آن هم چشم و گوش و دیگر حواس را دارا شد و هم حافظه و قدرت شناخت را حائز گردید. برای پاسخ به این سؤال مجبوریم نظریه این نو خلق کنیم و در کنار نظریه خروج روح از بدن بگذاریم و مثلا بگوییم شاید روح به محض خروج از بدن وارد یک بدن جدید می شود که آن بدن هم مثل این بدن فعلی ما ابزار و اندام حسی و چشم و گوش دارد و همچنین تمام شخصیت و حافظه ما که وابسته به آرایش منحصر به فرد و میژه تریلیون ها سیناپس در مغز خودمان است به صورت یکجا به آن بدن منتقل می گردد تا بتوانیم مشاهداتمان را که از طریق چشم و گوش آن بدن جدید دریافت میکنیم درک و تجزیه و تحلیل نماییم و به شناخت محیط اطرافمان نایل شویم از غذا چشم بدن جدیدمان هم مثل چشم بدن فعلیمان فقط به طیف مرئی امواج الکترومغناطیسی حساس است و مثلا امواج مادون قرمز و ماورای بنفش محیط را نمیبیند. از غذا گوش بدن جدیدمان هم دقیقا همان وسامت هایی که گوش بدن فعلیمان میشنود را میشنود و نسبت بسامت های بالاتر و پایین از آن کرست. است. حال پس از مفروض گرفتن این نظریه جدید پیچیده خلق و سوال بعدی پیش میآید اگر در آن زمان با آن بدن جدید غیر مادی می بینیم و میشنوییم و دیده ها با را، درک می کنیم و به خاطر می سپاریم و در حافظه آن بدن ثبت می کنیم چرا وقتی به بدن اصلی خود بر می گردیم در حافظه مغز مادی ما هم این رویدادها و مشاهدات ثبت شده است و به آنها دسترسی داریم. مگر مغز ما در آن زمان غیر فعال نبود و ارتباطش با روح قطع نشده بود. حالا دوباره باید نظریه جدید به وجود آوریم. و مثلا بگوییم خدای ما یا ساز و کار این جهان یا هر چیز دیگری این کار را به شکلی معجزه آسا که ما درکش نمی کنیم انجام می دهند. می بینید که این نظریات جدید قابلیت راستی آزمایی ندارند تا بتوان با آزمایش صحت و سغم آنها به پیشرفت علم کمکی کرد. همچنین نظریات و فرضیات اضافه هر کسی برای توجیه نظریه خروج روح از بدن احتمالا منبعث از ایمان دینی خودش و منطبق بر جهانبینی دینی خودش است و برای معتقدین به ادیان دیگر قابل قبول نیست. اصرار بر نظریه دوم و خلق پیدرپی پی نظریات جدید برای نجات نظریه جدایی روح از بدن روش منطقی و معمول ما نیست. مگر اینکه از جانب مغ های تحت فشار باشیم. اکنون برگردیم سراغ بررسی بقیه پدیدههایی که ظاهرا می شناخت و معرفت مستقیم در مؤمنین ایجاد کنند. پاورقی یکی از قرائنی که ایده دوگانگی روح و بدن را به ذهن افراد متبادر می‌کند، کیفیت آگاهی و امتداد وجود آن و یگانگی غیرقابل تجزیه ی آن است. اینکه آگاهی چگونه به وجود می‌آید مسئله است که هنوز پاسخ روشنی برایش پیدا نشده. در کتاب برهان علیت بخش روح به مسئله آگاهی پرداخته ام تا توضیح دهم چرا نیازی نیست چنین ای را لزوما با غیر مادی بودن آگاهی توضیح دهیم و چرا لزومی ندارد مادی بودن آگاهی را منتفی بدانید گرامیان همینجا در صفحه 75 فایل آوایی پنجم از کتاب فیزیولوژی ایمانو به پایان میبرید. تا درودی دیگر بدرود